سوره اعراف الله که بخشایان دیو با رحمت است لام میم سا. کتابی که بر تو نازل شده است هیچ بار سنگینی بر سینه تو نیست بلکه نازل شده تا به واسطه آن کسانی را که بیراه می هشدار دهید و نیز تذکری باشد برای اهل ایمان آنچه که از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده تبعیت کنید و غیر او را از اولیا و معبودهای دیگری که میپندارید، پیروی نکنید چندک هست پند پذیریتان چه بسیار شهرها و آبادیها را به سبب تجاوز و گناهان اهلش نابود کردیم در حالی که عذاب ما یا شب یا روز در وقت استراحت و بیخیالی به سراغشان آمد و تنها سخنی که در وقت نزول بلا توانستند بگویند این بود که اعتراف کردن به اینکه ما زندگی ظالمانهی داشتیم بدون شک ما هم از آنها و هم از پیامبرانی که به سوگشان مبوس کردیم سوال خواهیم کرد و تمامی عملکردشان را از روی دلیل و آگاهی برایشان بازگو میکنیم، زیرا ما قایب نبوده ایم. میزان سنجش اعمال و ارزشها در آن روز فقط بر اساس حق است، و هرکس کفه اعمال نیکش سنگین باشد بدون تردید از رستگاران است. و آنکه که اعمالش سبک و بیارزش است، بیشک از کسانی هند که به خاطر ستمی که به آیات ما روا داشتند به زیان خود عمل کردند ما شما را در زمین قدرت دادیم و آن چرا برای زندگی لازم داشتید در اختیارتان گذاشتیم اما چه اندک و کم ارزش است، شکر گزاریتان. ما شما را خلق کردیم و صورتگری گرینمندی آنگاه به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید همه سجده کردند به جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود و خدا گفت چرا با آنکه به تو فرمان دادم از سجده کردن به آدم امتناع کردی گفت زیرا من برتر و بهتر از اوگم مرا از آتش پاک آفریدی و او را از گل و خدا گفت از آن مقام و مرتبه تنزل کن زیرا آن مقام و مرتبه جای تکبر کردن تو نیست بیرون رو که تو از افراد پست و حقیری ابلیس گفت مرا تا روزی که برانگیخته میشوند مهلت ده خدا گفت تو از جمله کسانی هستی که به آنها مهلت ایم و ابلیس گفت اکنون که مرا گمراه و حیران کردی بر سر راه راست تو به کمین آدمیان می نشینم. و چنان با وسوسه هایم از رو و از پشت سر و از چپ و از راست بر آنها یورش می برم تا تو اکثر آنها را ناسپاس و قدر نشناس بیاوی بی. خدا گفت از این مقام و مرتبه بیرون رو من فور مطرود هر کس از آدمیان که ترا پیروی کند سوگند که جهنم را از همه شما پر میسازم. ای آدم تو و همسرت در بهش ساکن شوید و از هر چه خواستید بهرهمند شوید فقط به این درخت نزدیک نشوید که اگر چنین کنید در زمره ستمکاران خواهید بود اما شیطان به هدف این که آنچرا در نهان دارند برایشان آشکار کند آنها را وسوسه کرد و گفت خداوند شما را از این درخت من کرد تا مبادا تبدیل به دو فرشته شوید و به زندگی جاوید دست یابید و برای آنها قسم خورد که بیشک من خیرخواه شما هستم پس آنها را با وسوسه فریب داد و با خوردن از آن درخت لخت اوه شدند و تلاش کردند تا با برگهای درختان بهشتی خود را بپوشانند. آنگاه خداوند آن را ندا داد آیا شما را از آن درخت من نکردند و به شما نگفتم که شیطان برایتان دشمنی آشکار است؟ آدم و هفوه گفتند پروردگارا ما به خودمان ظلم کردیم و اگر ما را نیامرزی و رحم نکنی، بدون تردید از زیان دیدگان خواهیم بود خدا گفت همتان از این مقام و مرتبه پایین روید که از این پس دشمن یکدیگر خواهید بود برارگاهتان زمین است و متاعتان تا زمانی معین آنجا است خدا گفت در آنجا زندگی خواهید کرد و در آنجا خواهید مرد و از آنجا هم خارج خواهید شد. يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري و وري سؤاتكم وريش و لباس تقوه ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكروا ای فرزندان آدم برای شما لباسی فرستادیم تا به وسیله آن اندامتان را بپوشانید و ماگه زینتتان باشد حالان که لباس تنوا و پریزکاری بهتر است اینها از آیات و نشانه خداوند است امید آنکه که او را به یاد آورند ای فرزندان آدم مراقب باشید شیطان شما را نفریبد همانطور که پدر و مادرتان را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را کند و باعث شد تا لخت و اور شدن خود را نظاره کنند او و قبیلش همواره مراقب شما هستند از جایی که شما نمی توانید آنها را ببینید بیشک ما شیاطین را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمیآورند و هنگامی که مرتکب عمل زشتی میشوند میگویند پدران ما این گونه عمل میکردند و اصلا خدا به ما دستور داده است بگو ای پیامبر خداوند به کار زشت و فحشا دستور نمیدهد چرا چیزهایی را به خداوند نسبت میدهید که از آن آگاهی ندارید بگو پروردگار من به عدل و داد فرمان داده است و اینکه توجه خود را در هر عبادتگاهی متوجه او کنید و دین را خالصانه برای او بخواهید بدانید همان گونه که در ابتدا شما را آفرید دوباره به سویش باز خواهید گشت جمعی را هدایت کرد و جمعی مستحق گمراهی و حیرانی شدند زیرا اینها به جای خداوند خود را به دوستی شیطان سپردند و گمان می کردند که هدایت شدند ای فرزندان آدم هنگام ورود به هر عبادت خود را به بهترین صورت و سیرت بیارایید و از نعمتهای پروردگار بخورید و بیاشامید ولی زیاد روی نکنید زیرا خداوند هدر دهندگان نعمت را دوست ندارد بگو ای پیانبر چه کسی روزیهای های پاکیزه و زینت های خدا داده را که برای بندگانش آفریده حرام کرده است. بگو اینها ها های زندگی دنیا برای اهل ایمان است و در آخرت نیز از نابترین آن بهرمندند این چونین نشانه ها را برای اهل دانش شهر می دهیم بگو پروردگار من فقط زشتی های پنهان و آشکار و گناه و تجاوز به ناحق را حرام کرده است و نیز بر شما حرام است که به خداوند بزرگ شرک ورزید زیرا دلیلی بر آن نازل نشده است و نیز بدون آگاهی به او نسبتی ندهید برای هر امتی است پس هنگامی که اجلشان برسد نساعتی تأخیر کنند لَنَسْأَلَ الَّذِينَ جَلَوْا تَر بِيَأْبَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ای فرزندان آدم، هرگاه پیامبرانی که از خود شمایند بیایند و آیات مرا برایتان حکایت کنند، پس هرکس حرمت نگاه دارد و دست به کار نیک زند، نباید هیچ ترس و یعس و اندوهی به خود را دهد. به کسانی که آیات ما را انکار کنند و نسبت به آن تکبر ببرزند، بدون شک آنها اهل آتشند و جاودانه آن خواهند بود پس چه کسی ستمکارتر از کسی است که به خداوند افتراب بندند یا آیاتش را دروغ بپندارند آنها سهمی را که برایشان مقرر شده دریافت خواهند کرد و هنگامی که رسولان ما بیاگند تا جانشان را بستانند از آنها میپرسند کجا هستند منجیانی که به جای خداوند میخواندید خاندید می آنها همه گم شدند و این گونه بر علی خودشان شهادت می دهند که کافر و ناسپاسند. گوید بروید به میان امتهای پیش از خودتان چه از جنس جن و چه از جنس انس و به آتش داخل شوید. و هرگاه جمعی وارد شوند به جمع دیگر نفرین می کنند تا این که همگی با خاری و ذلت در آن قرار گیرند و آخرین گروهی که به آتش وارد شده به اولین گروه خطاب میکند پروردگارا اینها بودند که ما را گمراه کردند پس عذاب آنها را دو برابر کن و خدا گوید به خاطر دستاوردتان برای هر کدام از شما عذاب دو برابر است ولی نمیدانید و گروه اول به گروه آخر خطاب می شما هیچ امتیاز و برتری نسبت به ما ندارید پس همگی به خاطر دستاورد پلیدتان عذاب الهی را بچشید براستی کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و به آن تکبر ورزیدند در رحمت آسمانی برایشان گشوده نخواهد شد و اگر شطر از سوراخ سوزن بگذرد آنها هم رنگ بهشت را خواهند دید و این چونین جزای مجرمین را می دهید. جهنم بستر آنها و آتش پوشش آنها خواهد بود و این چونین جزای ستمگران را می دهید. والذین و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها هؤلاء اصحاب الجنه هم خالدون را بیش از طاقتش تکلیف نمیکنیم و آنهایی که به غراویق ایمان آورده و عملکردشان خوبی و خدمت است بیشک اهل بهشتند و در آن جاودانه میمانند بر گونه کینه را از دلهایشان میزدای نرها از زیر پایشان جاری است گوگند ستایش مخصوص خدایی است که ما را به این مقام هدایت کرد که اگر هدایت الهی نمی بود ما خودمان هرگز راه به جا نمی بردیم رسولان پروردگارمان حق را آوردند و به همگی گی دهند که به خاطر عمل کردتان وارث این بهشت شدید و اهل بهشت اهل جهنم را خطاب کنند ما از آن خداوند به حق وعدهمان داده بود بهرمند شدیم آیا شما نیز وعده خدایتان را به حق دریافتید گویند آری پس در این هنگام گویندهی بین آنها دهد که نفرین خداوند بر ستمگرم داد کسانی که راغ نجات بخش خدا را بر مردم میبندند و میخواهند آن را سخت و طاقت فرسا جلوه دهند بدون شک آنها به آخرت کافرند و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال يعرفون كل من و نادو اصحاب الجنة ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون و میان آنها بهشتیان و دوزخیان حجابی است و بر بلندی های مشرف به بهشت و جهنم مردانی هستند که هر کس را به چهره میشناسند. آنها به بهشتیان ندا میدهند سلام بر شما اما خود به بهش راهی ندارند در حالی که آرزوی ورود به آن سراپای وجودشم را فرا گرفته است و هنگامی که نگاهشان به اهل جهنم میافتد، میگویند: پروردگارا ما را از قوم ستمکار قرار مده و باز همین مردانی که بر بلندی مشرف بر بهشت و جهنم کسانی را که به چهره می ندا آنچه جمع کردید و هرچه تکبر ورزیدید به حالتان سود نداد آیا اینان همان کسانی هست که شما قسم خورده بودید هرگز رحمت الهی شامل حالشان نمی داخل بهش چبی و هیچ ترس و یعس و اندوهی بر شما نیست به اهل جهنم از اهل بهش میخواهند که اندکی از آب گوارا و نعمتهای خدادادیتان را بر ما فرو ریزید. اما پاسخ می خداوند بزرگ آنها را بر ناس پاسان حرام کرده است همانان که دینشان را به بازی و سرگرمی میگرفتند و زندگی دنیا فریبشان داد پس امروز ما نیز فراموششان میکنیم. همچنان که آنها دیدار چون این روزی را فراموش کردند و آیات ما را انکار نمودند ما کتابی برای آنها آورده ایم که آلمانه و به تفصیل آن را شرح داده ایم. کتابی که سراسر هدایت و رحمت برای اهل ایمان است آیا غیر از باستاب دستاوردشان را انتظار دارند؟ روزی که حقیقت اعمالشان برانها آشکار شد کسانی که آن روز را از یاد برده بودند میگویند پیامبران پروردگارمان به حق آمدند آیا اکنون شفیعانی هستند که برای رفع عذاب از ما پادر میانی و شفاعت کنند و یا امکان برگشت هست تا این بار کارهای دیگری غیر از آنچه مرتکب شده ایم انجام دهیم آنها به خود زرر زدند و منجیان دروغینی که می از نظرشان گم شدند پروردگار شما است که آسمانها و زمین را در شش روز خرخ کرد آنگاه به فرمان روایی بر مخلوقات پرداخت با تاریکی شب روز را میپوشاند و همباره شب هر به دنبال روز است و خورشید و ماه و ستارگان تحت سلطه اوست بدانید که هم آفرینش از آن اوست و هم اداره آن پربرکت و جاوید است خداوندی که پروردگار همه مخلوقات است ادعو ربكم تضرعا وخفيا انه لا در برابر خداوند آشکارا تذرع و زاری کنید و در خفا نیز او را بخوانید زیرا خداوند انسانهای سرکش و متکبر را دوست ندارد ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنین و بعد از آنكه زمین در بستر رشد خیش به اصلاح رسیده در آن فساد و تباهی به راه نیندازید و خداوند را از روی خوف و امید بخانید و بدانید رحمت الهی برای نیکوکاران نزدیک است. او کسی است که پیش از باران رحمتش بادها را به بشارت میفرستد تا عبرهای باردار را حمل کنند و ما آنها را به سرزمین های خشک و مرده روانه میکنیم و به واسطه باران آنها انواع را از زمین می رویانید. این چونین مردگان را زندگی میبخشید امید آنکه به یاد آورید و در سرزمین های پاکیزه گیاهانی به ازن پروردگارش می روید. اما در سرزمین ناپاک جز هرز گیاهی بی خارج نمی شود. آیات و نشانه ها را برای جماعتی که اهل شکر و سپاسند این چنین شهر دهیم و ما نو را به سوی قومش فرستادیم و او گفت ای قوم من خداوند بزرگ را پرستش کنید زیرا برای شما هیچ خدایی جز او نیست و من از عذاب روز بزرگ برایتان نگرانم ولی اشراف قومش گفتند بیشک تو را در گمراهی آشکاری میبینی نوح گفت ای قوم من هیچ گونه گمراهی در وجودم نیست فقط پیامبری از سوی پروردگار جهانیان هستم قصد من این است که پیام های پروردگارم را برسانم و برایتان خیرخواهی کنم آگاه باشید که من از خدا چیزهایی میدانم که شما نمیدانید آیا؟ تعجب کرده اید که چرا وحی پروردگارتان توسط مردی از خود شما آمده تا شما را بیم دهد و پریز گرداند و امید آنکه مشمول رحمت الهی شوید پس تکذیبش کردند و ما نیز او و یارانش را که در کشتی بودند نجات دادیم و همه کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم زیرا آنها قومی بی بصیرت و بیمعرفت بودند. و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادی. و او می گفت: ای قوم من، خداوند بزرگ را پرستش کنید، زیرا برای شما هیچ خدایی جز او نیست. چرا حرمت نگاه نمی دارید؟ اشراف ناسپال قوم او گفتند. ما ترا بیخرد و کمعقل میبینیم و را از دروغ و گویان می گفت ای قوم من در من عقلی و بیخردی نیست فقط پیامبری از سوی پروردگار جهانیان هستم پیام های پروردگارم را به شما میرسانم و برای شما خیرخواهی امینم آیا تعجب کرده اید که چرا وحی پروردگارتان از طریق مردی از خود شما آمده تا شما را از عاقبت کار بین دهد به یاد آورید آن هنگام که خداوند شما را جانشین قوم نوح کرد و شما را از نظر جسمانی بنی بنی کرد پس نعمت های خدا را به یاد آورید امید آنکه رستگار شوید گفتند آیا به سراغ ما آمده ای که فقط الله را بپرستیم و خدایان پدران را رها کنی، اگر راست میگویی عذابی را که به ما بعد میدهی بیاورد. گفت از جانب پروردگارتان پلیدی و خشم بر شما فرود آمده است آیا با من بر سر نامهایی که شما و پدرانتان بر معبودهای دروغین نهاده اید مجادله میکنید بدانید که خداوند هیچ دلیلی بر وجود آنان نازل نکرده است پس انتظار بکشید و من نیز پاب پاگ شما منتظر میمانم پس او و یارانش را به واسطه رحمتی از خودمان نجات دادیم و ریشه کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و اهل ایمان نبودند، بعد کردیم و به سوگ قوم سمود برادرشان صالح را فرستادیم و او می گفت ای قوم من خداوند بزرگ را پرستش کنید زیرا برای شما هیچ خدایی جز او نیست. برای شما از سوی پروردگارتان دلیل روشنی آمده است این شطر الهی برای شما یک آیه است آزادش بگذارید تا در زمین خدا بچرد آسیبی به آن نرسانید که عذاب در داور الهی شما را فرا خواهد گرفت وَذَكِّرْهُ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَنَىٰكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَرَكَّبُوا آلَ یاد آورید هنگامی که خداوند شما را جانشینان قوم عاد قرار داد و در زمین مستقرتان کرد تا در پهنه خاکش برای خود قصرها بپا کنید و در ها خانه ها بتراشید پس نعمتهای خدا را به یاد آورید و در زمین تباهی و فساد به راه نیندازید و اشراف متکبر قومش به مستضعفان که ایمان آورده بودند گفتند آیا میدانید که ساله از جانب پروردگارش آمده است؟ گفتند ما به آنچه او آورده ایمان داریم متکبران گفتند آنچه را شما با آن ایمان آورده اید انکار می کنیم. پس شطر الهی را کشتند و از دستور پروردگارشان سرپیجی کردند و گفتند ای ساله اگر واقعا یک پیامبر هستی آن عذابی را که به ما وعده میدهی بیاورد. پس زلزلهی مرگبار آنها را فرو گرفت و در خانه های خیش بر جای مردند و ساله از آنها روی برگردان و گفت ای قوم من پیام پروردگارم را به شما رساندم نصیحتتان کردم اما شما هیچ خیرخواهی را دوست ندارید به یاد هنگام که لوت به قومش گفت چرا گناه زشتی را مرتکب می شوید که هیچ کس قبل از شما در میان مردم جهان چون این گناهی را مرتکب نشده است شما به جای زنان با مردان شهوت رانی می کنید شما مردمی کاری. و جواب قومش جزین نبود که گفتند آنها را از شهرتان بیرون کنید زیرا آنان خود را از ما کنار میکشند سرانجام، لوت و خاندانش را نجات دادیم مگر همسرش را که با دیگران در شهر ماند و بارانی آنها فرو رستادید پس بینگر که عاقبت گناهکاران چگونه است به سوی مردم مدین برادرشان شعب را فرستادیم و او گفت ای قوم من خداوند بزرگ را پرستش کنید که جز او برای شما خدایی نیست از سوی پروردگارتان دلیل روشنی برایتان آمده است با پیمانه و ترازو عادلانه وزن ازن کنید و به مردم کم پروشی مکنید و زمین را پس از اینکه به اصلاح در آمده به فساد و تباهی نکشید که این برای شما بسیار بهتر است اگر ایمان داشته باشید و بر سر هر راهی ننشینید تا مردم با ایمان را تهدید کنید و از راه خدا باز دارید و یا با القای شبهات راه خدا را سخت و طاقت فرسا نشان دهید و به یاد آورید هنگامی که تعدادتان اندک بود و او جمعیت شما را بسیار کرد و بینگرید که عاقبت کار مفسدان چگونه بود چنانچه گروهی از شما به حقی که به خاطر آن فرستاده شده ایمان آورند و چنانچه گروهی ایمان نیاورند آورند همگی صبر کنید تا خداوند میان ما قضاوت کند زیرا او بهترین داوران است و اشراف متکبر قومش گفتند ای شعی ما قطعا تو و پیرمرد تر که ایمان آورده از شهرمان بیرون میکنیم مگر آنکه به آیین ما برگردید گفت حتی اگر از آن کراهت داشته باشیم اگر به آین شما برگردیم آن هم پس از اینکه خداوند از آن نجاتمان داده است بدون شک ناسپاسانه به خداوند افترا زدیم و سزاوار نیست که به آن برگردیم مگر آن خدایی که پروردگار ماست بخواهد آگاهی پروردگارمان بر همه چیز احاته دارد پس بر خداوند بزرگ توکل میکنیم کنیم که پروردگارا میان ما و قوم ما به حق راه حلی بگشا که تو بهترین راه حل دهندگانی و اشراف کافر قومش گفتند اگر شما از شعیب تبعیت کنید بدون تردید زیان کار خواهید بود پس زلزلهی مرگبار آنها را فرا گرفت و صبحگاهان در خانه‌هایشان بر جای مردند. آنها که شعیب را تکذیب کردند، چنان مردند که گویی هیچگاه در آن دیار زندگی نمی کردند زیرا آنها از زیانکاران بودند. پس شعیب از آنها رو روگرداند و گفت: ای قوم من، پیام های پروردگارم را به شما رساندم و نصیحتتم کردم با این وجود چگونه بر حال ناسپاسان تأصف بخورم و هیچ پیام را به دیاری نفرستادیم مگر آنکه مردمش را به سختی ها و خسارت ها گرفتار کردیم تا به سوی خدا بیایند و به درگاهش تذرع و زاری کنند سپس نیکی و فراوانی را جایگزین بدی و تنگ دستی کردیم آنچنان که مغرورانه زیاده خواه شدند و گفتند به پدران ما نیز هم تنگ دستی و هم توانگری رسیده است پس ناگهان آنها را در خشم و قهر خود فرو گرفتیم در حالی که در بیخبری به سر می بردند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 اهل شهرها و آبادیها ایمان می‌آوردند و حرمت اوامر خدا را نگاه می‌داشتند قطعا در حق برکات آسمان و زمین را بر آنها میگشودی اما آنها حق را انکار کردند پس ما نیز به خاطر دستاوردشان مجازاتشان کردیم آیا اهل این شهرها در امان خواهند بود هنگامی که شوانه مجازات ما برسد در حالی که آنها در خوابند و یا اهل این شهرها در امان خواهند بود هنگامی که مجازات ما در روز برسد در حالی که آنها سرگرم بازی روزمردگی خود هستند آیا آنها از مکر الهی در امان خواهند بود حالان که جزیان کاران مغرور کسی خود را از مکر خدا در امان نمی آیا کسانی که زمین را از دست صاحبان قبلیش به ارث بردند ابلت نمیگیرند که اگر بخواهیم آنها را به سبب عمل کرده به حلاکت میرسانیم و بر دلهایشان مهر می تا صدای حقیقتی را نشنوند اخبار این شهرها و آبادیها را برای تو بیان کردیم پیامبرانشان با دلائلی روشن آمدند اما آنها آنچه را که از قبل انکار کرده بودند باز باور نکردند و اینچنین خداوند بر قلب‌های کافران میند زیرا بیشتر آنان را متعهد به عهد و پیمان نیافتیم بلکه اکثر آنها را زشت کار و بدسیرت دیدیم سپس بعد از آنها موسا را با آیات من به سوی فرعون و اطرافیانش فرستادی اما آنها با انکار آیات با ان ظلم کردند پس بنگر سرانجام اهل فساد و تباهی چگونه بود؟ و موسی گفت ای فرعون من پیامبری از سوی پروردگار جهانیانم سزاوار است که جز حق از خدا نگویم من با معجزه آشکار به سوی شما آمدم پس بگذار بنی اسرائیل را با خود ببرم فرعون گفت اگر راست میگویی که با معجزه آمده ای آن را نشان ده بیدرنگ موسا عصای خود را بر زمین انداخت ناگهان به صورت ماری بزرگ نمایان شد و دستش را از زیر ردایش بیرون آورد ناگاه در برابر انظار، سفید و پرتلالو شد اطرافیان فرعون گفتند این یک جادوگر بسیار داناست میخواهد شما را از دیارتان بیرون کند پس چه دستوری می دهید؟ به فرعون گفتند فعلاً او و برادرش را نگه دار و پیک را به همه شهرها بفرست تا هر جادوگر دانا و توانایی را که یافتند به سوی تو بیاورد بنگومی که جادوگران نزد فرعون آمدند گفتند اگر ما پیروز شویم پاداش مهم می خواهیم داشت فرعون گفت آری بدون تردید از مقربان ما خواهید بود و جادوگران گفتند ای موسی اول تو جادویت را بیافکنی یا ما بیافکنیم موسا گفت شما آن دارید بیافکنید بنگومی که جادوی خود را افکندند به طریق چشم بندی باعث ترس مردم شدند و سهر عظیمی پدید آوردند و ما به موسی وحی کردیم که اصایت را بیفکند پس ناگاه اجدهایی بزرگ شد که آثار چشم بندی دروغین آنها را بلعید پس حق پدیدار شد و عملکرد آنها نیز باطل گردید و آنها مغلوب شدند و سرفکنده گردیدند نگاه تمامی جادوگران به سجده افتادند و گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم به همان پروردگار موسا و هارون فرعون گفت به او ایمان آوردید قبل از که من به شما اجازه دهم این یک مکر و نقشه فریب کارانه است که شما در باره این شهر اندیشیده اید تا مردمش را از آن بیرون کنید به زودی خشم مرا دید سوگند می‌خورم که دست ها و پاهایتان را به جهت خلاف بعد خواهم کرد سپس همگی شما را به دار میآویزم آنها گفتند باکی نیست در این صورت به سوی پروردگارمان باز می گردیم انتقام تو از ما برای این است که ما هنگامی که آیات پروردگارمان آمد به آن ایمان آوردیم پس پروردگارا نهایت صبر و تحمل را به ما ارزانی دار و ما را چون تسلیم شدگان درگاهت بمیران و اطرافیان فرعون گفتند آیا موسی و قومش را میگذاری تا هرچه بخواهند روی زمین فساد و تباهی کنند و تو و خدایانت را ترک گویند گفت پسرانشان را میکشیم و دخترانشان را زنده میگذاریم و ما بر آنها کاملا مسلط هستیم موسی به قومش گفت از خداوند بزرگ یاری طلبید و استقامت کنید زیرا زمین از آن خداست و به هر کدام از بندگانش که بخواهد آن را عطا می کند و بدانید که عاقبت خیر از آن کسانی است که حرمت اوامر خدا را نگاه می‌دارند گفتند قبل از اینکه تو بیایی عذیت و آزار می‌شدیم حال که تو آمدی باز در رنج و عذابید موسا گفت امیدوار باشید که پروردگارتان دشمنانتان را حلاق کند و شما را جانشینان روی زمین گرداند آنگاه خدا بنگرد تا چه میکنید؟ کنید دراستی ما فرعونیان را دچار قهطی و کمبود ثمرات کردین تا شاید پند بگیرند و هنگامی که خیر و برکتی به آنها می رسید می گفتند این از لیاقت و شایستگی خود ماست اما هنگامی که بدی و شری شر به آنها می رسید می گفتند از شومی موسا و یارانش است بدانید آنچه از خوبی و بدی به آنها می رسد همه از جانب خداوند است اما اکثر آنها این نکته را درک نمی کنند و گفتند هر گونه آیه و معجزه بیاوری تا ما را با آن مسهور کنی بدان که ما به تو ایمان نمیآوریم. ما نیز نشانه های پی در پی آشکاری چون بلای طوفان و ملخ و شپش و و باران خون را که نشانه از هم جدا بودند بر آنها فرستادی اما باز متکبرانه از اوامر الهی سرپیچی کردند زیرا آنها جماعتی گنهکار بودند و هنگامی که عذاب الهی برانان فرود آمد گفتند ای موسا ترابان عهدی که خدا با تو دارد از پروعدگارد بخواه این بلاها را از ما بردارد تا یقینا به تو ایمان آوریم و بنی اسرائیل را با تو رهسپار سپار کنیم اما هرگاه تا مدت محدودی از را از آنها برمی پیمانشان را می‌شکستند. شکستند از آنها انتقام گرفتیم و آنها را در دریا غرق کردیم زیرا آنان آیات ما را دروغ می و از آن قافل بودند و قومی را که ضعیف نگاه داشته بودند وارس شر و شرق و غرب آن سرزمین پربرکت کردیم و وعده نیکی که خداوند به بنی اسرائیل داده بود به خاطر صبر و استقامتشان در حد کمال تحقق یافت و ما نیز هرچند فرعونیان میساختند و برمی‌آفرشتند نابود میکردیم و بنی اسرائیل را از دریا گذراندیم تا این که قومی را دیدند که به پرستش بودهایشان دلخوشند گفتند ای موسا تو هم برای ما چون آنها خدایی بساز و موسی گفت حقیقتا شما قوم نادانی هستید اینها که میبینید آقابت کارشان نابودی است و تمامی عمل باطل است گفت چرا به جای الله خدایی برای شما بجوگم در حالی که او بود که شما را بر جهانیان برتری داد و یاد آورید هنگامی که شما را از دست فرعونیان نجات دادیم همانهایی که شما را به شدیدترین ترین بچی شکنجه می کردند پسرانتان را می کشتند و دخترانتان را زنده نگاه می داشتند در حالی که این برای شما یک امتحان بزرگ الهی بود و ما سی شب با موسا وعده گذاردیم و ده شب دیگر بر آن اضافه کردیم تا وعده الهی چهل شب کامل شد و موسا به برادرش هارون گفت در این مدت که من نیستم جانشین من در میان قومم باش امور را به بهترین وجه رسیدگی کن و از اهل فساد و تباهی تبعیت مکن ولم ما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انقر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُصْهَرِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَانْغَامَ كَمُوسَى بِبَعْدِ غَاهَ أَمَدَ بِخُدَاوَدْ باو سخن گفت موسا اظهار داشت پربردگارا خود را به من نشان بده تا تو را ببینم خدا گفت هرگز نمیتوانی مرا ببینی اما به آن کوه نگاه کن اگر مقاومت کرد و توانست بر جایش بماند تو هم میتوانی مرا ببینی پس هنگامی که پربردگارش بر کوه تجلی کرد کوه را تلی از خاک نمود و موسا نیز بیهوش گشت و هنگامی که بیهوش آمد گفت پاک و منذعی تو من به درگاهت توبه میکنم و من اولین باورکنندگانم و خدا گفت ای موسا من تو را از میان مردم انتخاب کردم تا پیام و کلام مرا برسانی پس آنچه را به تو دادم بگیر و شخر گذار با و بر روی لوه ها برای او از هر موضوعی پندی نوشتی و برای هر چیز شرحی دادیم. سپس گفتیم آن را با قدرت بگیر و مراقبت کن و بر اساس آن قومت را فرمانده تا به بهترین وجه این دستورها را عمل کنند به زودی جایگاه زشت کاران بدسیرت را به شما نشان خواهم داد به کسانی را که در روی زمین به ناحق و متکبرانه سرکشی کنند از آیاتم محروم می کنند آنچنان که هر نشانه حقی را ببینند باور نکنند تا جایی که حتی اگر راه رشد و تعالی جلوی پایشان باشد در آن وارد نشوند. اما اگر راه گمراهی و حیرانی برایشان باز شود بیدرنگ به آن غافل شود و این کیفر به خاطر این است که آنها آیات به حق ما را انکار کردند و از آن قافل شدند و کسانی که آیات ما و روز قیامت را انکار کردند اعمالشان تباخ شده است مگر غیر از این است که هر کس مطابق دستاوردهایش جزا و قوم موسی در غیاب او از تلاجات و زیورالاتشان گوثالهی ساختند پیگری که صدای گوساله داشت آیا آنها نمی بینند آنچه ساختند نمی تواند با آنها حرف بزند و به راه نجاتی هدایتشان کند آنها گوساله را انتخاب کردند زیرا ستم پیشند و هنگامی که به حقیقت پی بردند دیدند که گمراه شدند و گفتند اگر پروردگارمان بر ما رحم نکند و ما را و زد بدون شک از زیان زدگان خواهیم بود. بنگامی که موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت گفت چه بد جانشینانی برایم بودید. آیا قبل از که دستور خدا بر شتاب کردید؟ ها را انداخت و سر برادرش را گرفت و به سوی خود کشید. برادرش گفت ای پسر مادرم من تقصیری ندارم این قوم مرا ناتوان کردند حتی نزدیک بود مرا به قتل برسانند از تو میخواهم دشمن شادم نکنی و مرا جز به قوم ستمکار نپنداری و موسی گفت پروردگارا من و برادرم را بیاموز و به رحمت بی وارد کن زیرا تو برترین بخشندگانی. کسانی که گو پرستی اختیار کردن بدانند که به زودی خشم پروردگارشان به آنها خواهد رسید و سهم آنها در زندگی دنیا ذلت و خاری است ما این گونه جزای افترازنندگان را می دهیم. و الذین عملوا ثم من بعدها و آمنوا من بعدها به کسانی که عمل کردشان بد بود، اما بعد از آن توبه کردند و ایمان آوردند، بدانند که پروردگارت از این پس بسیار آموزنده و باگذشت است و هنگامی که خشم موسی افرونشست، لوها را برگرفت، هایی که نوشته آن سراسر هدایت و رحمت است. برای همه کسانی که از خداوند بزرگ پروا دارند و موسی از میان قومش هفتاد مرد را برای میادگاه ما انتخاب کرد اما هنگامی که زلزله آنها را گرفتار کرد گفت پروردگاه اگر میخواستی میتوانستی پیش از این هم آنها و هم مرا حلاق کنی آیا می خواهی به جرم کنخردان ما را حلاق کنی؟ اما میدانم که این نیز امتحان توست است و توسط آن هر که را بخواهی گمراه می و هر که را بخواهی هدایت می بخشی. تو بزرگ ما هستی پس ما را بیامرز و از ما بگذر که تو برترین آمرزندگانی و هم در دنیا و هم در آخرت برای ما نیچی مقرر کن زیرا ما به سوی تو راه یافتیم و خدا گفت مجازاتم را به هر که سلاح بدانم می رسانم که رحمت من همه چیز را فرا گرفته است و این رحمت الهی را به کسانی که حرمت عوامل را نگاه می دارند و زکات پرداخت می کنند و نیز به باممی کسانی که آیات ما را باور دارند مقرر می‌کنند کسانی که از پیامبر خدا این رسول امی همون که نامش نزد آنها در تورات و انجیل آمده پیروی می‌کنند بدانند که او آنها را به خوبی فرمان می‌دهد و از بدیها باز می‌دارد و هر چیز پاکیزه را بر آنان حلال می‌گرداند و هر ناپاکی را حرام می‌کند و بار گران و گل و زنجیری را که عمری با آنهاست بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آورند به حمایت و یاریش کنند و از نوری که با او نازل شده پیروی نمایند بطعا برندگان حقیلی هند. بگو ای مردم من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم همان خدایی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست هیچ معبودی جز اونیست نیست زنده میکند و میمیراند پس خدا و رسولش این پیامبر امی را باور کنید پیامبری که خدا و کلماتش را باور کرده است و پیرویش کنید امید آنکه به راه نجات و آرامش هدایت شوید و جمعی از قوم موسا هستند که مردم را به راغ حق راهنمایی میکنند و به عدالت حکم میکنند و بنی اسرائیل را به دوازده تایفه تقسیم کردیم و هنگامی که قوم موسی از او آب خواستند به او وحی کردیم عصای خود را به آن سنگ بزن پس دوازده چشمه از آن جاری شد و هر گروه به سوی آبشخور خود رفت و عبر را سایبان آنها کردیم و برای آنها من و سلوا فرستادیم بخورید از چیزهای پاکیزهی که روزیتان کرده ایم بدانید آنها با نافرمانی خود به ما ظلم نکردند بلکه ستمی بود که بر خود روا می داشتند و که با آنها گفتیم در این شهر ساکن شوید. و از هر چه در هر جا که ماگل بودید بخورید و بگویید خداوندا گناهان ما را بیامرز و از دروازه شهر سجده کنان داخل شوید تا ما نیز گناهان شما را بیامرزیم و بر پاداش نیکوکاران بیفزایید پس ستم سخن خدا را به چیزی غیر از آنچه به آنها گفته شده بود تغییر دادند ما نیز به کیفر این گناه و این ظلمی که روا داشتند از آبی از آسمان برانها فرو فرستادیم از آنها درباره آن شهر کنار دریا بپرس هنگامی که در روز شنبه نافرمانی از امر خدا کردند همان روزی که ماهیانشان بر سطح آب ظاهر می شدند که آن ماهیان در غیر شنبه ها به سراغشان نمی آمدند با آنکه سید در آن روز را تحریم کرده بودیم آنها به سید پرداختند ما اینچنین آنها را امتحان کردیم و آنها هم نافرمانی کردند و گروهی از آنها گفتند چرا قومی گناه کار را که آقبت خدا آنها را حلاق خواهد کرد یا به عذاب شدیدی گرفتارشان خواهد نمود موعظه می کنید. گفتند به خاطر این که در پیشگاه پروردگارتان حجتی داشته باشیم و همین که شاگد حرمت فرمان خدا را نگاه دارند. و چون آنچرا که به آن یادآور شده بودند فراموش کردند و به هیچ انگاشتند ما گروهی را که از بدینه احیمی کردند نجات دادیم و گناه ستمپیشه را به خاطر دستاورد زشتشان به عذاب بدی دچار کردیم. پس چون از آنچه چه شده بودند سرپیچی کردند گفتیم به بوزینگانی مطرود تبدیل شوید. و یادار هنگامی که پروردگارت اعلان کرد کسی را آنها مسلط می که تا روز قیامت همواره آنان را به عذاب سختی گرفتار کند بدان که مجازات پروردگارت سریع است و در عین حال بر توبه کنندگان بسیار آمرزنده و با است و آنها را در زمین به گروه تقسیم کردیم برخی سالهان و برخی ناسالهان و همه را هم به خوبی ها و نعمت ها و هم به بدی ها و مصیبتها ها امتحان کردیم شاید به راه حق و عدالت بازگردند و بعد از آنها نسلی جایگزی نشان شد که وارث کتاب بودند با این وجود مطاق پست دنیا را به حق ترجیح دادند به گفتند باکی نیست به زودی بخشیده میشویم. چنانند که اگر بهره و مطاعی همانند آن به دستشان بیفتد باز آن را میگیرند. آیا پیمان کتاب الهی با آنها بسته نشد تا از این پس به خداوند بزرگ جز حق نسبتی ندهند در حالی که از کتاب خدا درس ها گرفتند بدانید که زندگی جاوید برای آنان که حرمت فرمان خدا را نگاه میدارند بهتر از هر چیز دیگر است چرا در این نکته تعقل نمی کنید وَالَّذِينَ بالكتاب و وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ان لَا نُبِيعُ عَجْرَ الْمُصْلِحِينَ آنها که به کتاب خدا تمسک می و نماز به پامی بدانند که ما پاداش انسانهای مصلح را زایع نمی کنیم. و یادار هنگامی که ما کوه را بر بالای سرشان چون سایبانی برفراشتیم آنچمان که گمان کردند الان بر سرشان سقوط می کند. و به آنها گفتیم آنچرا به شما داده ایم، با قدرت بگیرید و مراقبت کنید و آنچه را در کتاب است به خاطر بسپارید امید آنکه حرمت عوامر الهی را نگاه دارید و بیادار هنگامی که پروردگارت از پشت بنی آدم همه فرزندانش را برگرفت و خطاب کرد شما را بر فطرتتان گواه میگیرم آیا من پروردگار شما نیستم همه گفتند آری هستی و گواهی میدهی این کار را کردم که تا روز قیامت نتبانید بگویید ما از آن بیخبر بودیم و حتی نگویید که پدران ما پیش از این مشک بودند و ما بعد از آنها آمدیم و تو میخواهی به جرم اهل باطل ما را مجازات کنی این گونه آیاتمان را شرح می دهیم. شاید از باطل باز گردند و برای آنها داستان شخصی را بازگو که آیات نجات بخشمان را به او عطا کردیم اما او آقبت خود را از آن آیات خالی کرد و شیطان هم مسرورانه به دنبالش روان شد تا بالاخره از گمراهان گشت و اگر می‌خواستیم او را به واسطه همان آیاتی که در سینه داشت به سوی مقامات عالی کمال بالا می بردی. اما او در زندگی پست دنیا بماند و از خواهش های نفسانی خود پیروی کرد مثل او همچون است که چه به او حمله کنی و چه به حال خود را آیش کنی در هر دو حالت زبانش را بیرون می‌آورد. و مثل جماعتی که آیات ما را انکار میکنند نیز چنین است ای پیامبر این گونه داستانها را بر آنها حکایت کن شاید به اندیشه فرور نبند و چه بد است مسئله قومی که آیات ما را انکار کردند بدانید که آنها به خودشان ظلم کردند هر را خدا هدایت کند بیشک هدایت شده است و هر را در گمراهی گذارد بدانید که آنها زیانکارند در واقع ما بسیاری از افراد جن و انس را برای جهنم آفریده ایم. زیرا آنها قلبهایی دارند که با آن درک حقایق نمی کنند چشمانی دارند که با آن حقایق را نمیبینند، و گوشهایی که ندای حق را نمی شربند. آنها بی تردید چون چهار پایان هستند بلکه گمراه ترند بدانید که آنها از حقایق قافلند وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ همه این نام های خوب از آن خداست پس با این نام ها او را بخوانید به کسانی که نام های خوب خدا را انکار می کنند به خود واگذارید که به زودی به سبب عمل کردشان مجازات خواهند شد حقن، حقن، عدلن، عدلن، عدلن، حی قیوم علی و از میان آنها گروهی را خلق کردیم که هم به راه حق راهنمایی کنند و هم به حق اجرای عدالت مینمایند. کسانی که آیات ما را انکار کنند مرحله به مرحله از جایی که نمیدانند خار و زنیل میکنیم. اکنون به آنها مهلت میدهم. زیرا تدبیر من قوی و حساب شده است آیا نفهمیدند که نشانی از جنون در دوستشان بر نیست بدانید که او فقط یک هشدار دهنده آشکار است آیا به حقیقت آسمان ها و زمین و آنچرا که خداوند خلق کرده نمی شاید مرگشان نزدیک باشد پس به کدام سخن بعد از قرآن میخواهند ایمان بیاورند هر کس را خدا در گمراهی گذارد هیچ هدایت کننده برای او نخواهد بود و خدا آنها را در توقیان و سرکشیشان رها می تا حیران و سرگردان بمانند از تو در باری زمان وقوع قیامت سوال می کند. بگو آگاهی از آن فقط نزد پروردگارم است هیچکس کس جز او نمیتواند زمان وقوع آن را آشکار کند قیامت حتی بر آسمان ها و زمین سخت و پر اهمیت است و جز به طور ناگهانی به سراغ شما نمیآید. باز سوالشان را تکرار می کند گویی تو از زمان وقوع آن خبر داری بگو آگاهی از آن خاص خداونده است هرچند که اکثر مردم نمیفهمند بگو من مالک سود و زیان خیش نیستم مگر آنچرا که خداوند بزرگ خواسته باشد و اگر چنانچه از غیب و نادیده ها آگاهی داشتم بدون شک برای خودم خیر و خوبی زیادی جمع میکردم و نمیگذاشتم ضرر و زیانی به من وارد شود اما بدانید که من کسی نیستم جز یک هشدار دهنده و بشارت دهنده برای اهل ایمان. او خدایی است که شما را از یک جان واحد آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنارش آرام گیرد. پس هنگامی که با او درآمیخت حملی سبک برداشت و مدتی با او گذراند و وانگاه که حمل سنگین شد، هر دو از خدای پرورندشان خواستند که اگر به ما فرزند سالی عطا کنی بدون تردید از شکرگزاران خواهیم بود. بنگام که خدا فرزند سالی به آنها عطا کرد در آن به آنها داده بود شریکان دیگری قائل شدند. بدانید که خداوند بلند مرتبه تر است از شرکی که می‌ورزند. آیا چیزهایی را همتای خدا قرار میدهند که نمی چیزی را خلق کنند و حتی خود مخلوقند و نمی توانند در مسائب و مشکلات آنها را یاری کنند و نه حتی یاور خودشان باشند بدانید اگر آنها را به راه هدایت بخوانید از شما تبعیت نمی کنند. چه آنها را بخوانید و چه ساکت باشید برایشان یکسان است آنهایی را که به جای خدا می‌خوانید، بندگانی مثل شما هستند پس اگر راست می که آنها حاجات شما را براورده می کنند، آنها را بخوانید باید به شما پاسخ دهند آیا آنها پاهایی دارند که با آن راه بروند دستانی دارند که با آن چیزی را بگیرند چشمهایی دارند که با آن ببینند گوشهایی دارند که با آن بشنوند بگو آنچرا شریک خدا قرار داده اید دخانید و ضد من تدبیر کنید و لحظه ای محلتم ندهید بدانید یاور من الله است همان خدایی که کتاب را نازل کرد و سرپرستی سالحان را عهدهدار دار است آنهایی را که به جای خدا می خانید نمی شما را یاری کنند و نه حتی یاور خودشان باشند و اگر آنها را به راه هدایت بخوانید نمیشنند و میبینی که فقط تو را نگاه میکنند در حالی که دیدگانشان از بصیرت خالی است اف و بخشش را پیشه کن و به کار نیک فرمانده و از نادانان دوری گزین و اگر از جانب شیطان در تو وسوسه ای پدید آمد به خداوند بزرگ پناه ببر زیرا او شموا و آگاه است. إِنَّ الَّذِينَ کسانی که حرمت خداوند را نگاه می‌دارند، چنانچه از جانب شیطان وسوسه‌ی بس آنان را فراگیرد خدا را یاد میکنند و ناگاه چشمانشان به حقایق می میشود و برادرانشان آنها را به گمراهی و انحراف میکشانند و از هیچ عملی کتایی نمیکنند به هنگامی که در وحی تأخیر شود و ای برایشان نیاوری میگویند چرا از نزد خود آیهی نمی آوری بگو من فقط از چیزی پیروی میکنم که بر من وحی می شود آن هم از جانب پربردگارم و بدانید که وحی خداوند برای اهل ایمان سراسر هدایت و رحمت است و هنگامی که قرآن خانده می شود با آن گوش کنید و ساکت باشید شاید مشمول رحمت خداوند بزرگ کردید و پروردگارت را بیان که صدایی بلند کنی در دل خودت به تزرع زاری یاد کن و یاد کن او را هر صبح و شام و از غافلان مباش بدان کسانی که در حضور خدایند از عبادت او تکبر نمی و او را تسبیح می و از عظمت او به سجده می افتند این الذین عند ربی لا عن عبادته وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْتُهُونَ صدق الله العلي العظيم بلند مرتبه بود ازین از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و سلم